بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب رابی رابی رویم و صلو علی سیدنا رسول الله و آده از ریدین الطاقرین الماسومین و نعتد درمت و اللهم افرم و جلی اموشهرین و احمد برحمتی و احمد رحمتی و ایشون مرموم شیخ قدس الله آنسته متعرض مسئله جانب وضعی به اصطلاح در باد رشعه شده بعد این که مسلم شده واضح شد، وقتی شدیه رشعه هرام از تو بزرکبایه اگر کوبی رو به عنوان رشعه قاضی داد آیا بعد این که فهمیدم قاضی به نفهمید مرموم کسیه یج و علاقاضی رد کول اگر موجوده بعد به عنوان پول بود سر بود ماشین بود هر چی بود و الان تقدیر سلط یه جماردگاه عوض هست کردیم سابقا اینجور مثلا یه مقدار قغلایی هم هست اورفی هم هست یعنی وقت خاضی اموالی رو میگیره با ارمان رشوی خیلی که که از اون پولو برگردونه این که کلام به مالک برنامه دولت می خوره و دیگری خدا اون پول رو به هر حال از جناب قاضی می گیرن حالا که دست یه چیزی برگردون بحث دیگری چون کل ما موکه به حرمت اخزه وجب علی الاخر رده این یک دو مسئله زمان چون رد اینطور نیست که حتما ملازمه داشته باشه با رد و بدلی که اصطلاحاً زمانه پس ما باید دو چیز رو هم ثابت بکنیم یکی اینکه خودشو رد بکنه، یکی این که اگر طلب شده بدلش شد. رو و رد و بدل یعنی من از طلب الهوس بده مقابله او به حکم. البته منظور شیخ یک تفصیل قائلن، از اون پول رو به عنوان یک نوع مقابلی یا شما به خاطر من حکم می‌کنید الان پول اینجا رو گفته ایش. اما من گفت و من حلیه به شما میگم ما میگرفتیم یه گرفت شما حل بشین هدیه شد. ببین در اینجا میگه کل جعله ولی قجره حیث به تحریمه ما این باید به تحریمه ها باشه اینجا نسخه من تحریمه ما داره چون جعلی که حرامه قجره محض در این بود این مفصل کنیدیم رو باید شد کنیدیم بقیه که آیا قجره بر قضا حرامه یا نه ارز کردیم در مسادری که ما الان داریم باز قطع نظر از سه از سخمش از احد صحابه بست قجره قاضی م از زمان عمر مطرح شده خیلی هم عجیبه یک روایت واحدی صحنه به عمر اضافه شده درمیوم اون از زمان امین و هم شده و مشهور بنا بر این است که اجرت اجرت بر غذا جایز نیست بعد بله گفتن از بیت مال اشال نداره ولیکن بله که فرمود استاد خود اجرت بر غذا جایز می‌داند خود این پول دیگه حق بکنه قضاوت بکنه. این, رو... این چون این بحث اجرت بر غذا یه مقدارش مربوطه به رشته بود که اینجا متحرز شدیم یه مقدارش هم مربوطه از در احضا در واجبات این اشار در جه خودش متحرز میشیم. فعلت این هم متحرز شدیم خبتیم اجرت در قضا رشته نیست این مقداری که اینجا متحرز و که در رشته لمنه ها حقیقتاً جعلان عرز باطل و لذا فسته رو به جعل در کتاب قاموس رشته به جعل ت احتمالا سابقه گزش بعد از این و توضیح بدیم که عده‌ای از علمای اهل لغت رشو مطلق جهور گرفتن که شامل هم میشه این توضیحاتی سابقه گذشت بعد از این نشا در تفسیر رسول خیلی با دقت برخورد بشیم اونجا از می که این تفسیر روشن نیست ولولا يخصد ال مقابله بل اعطا مجانا ليكون ضاريا على الحب وهو المسمى بالهديه هدیه فرزاه و عدم و زمان حالاته عدم و زمان اگر خودش موجوده ممکنه بگی برگرده اما زامن نیست لن مرجع و الهه مثل مجانیه فاسده از دایی لا یاد را اوزن. در با محاملات دایی تاثیر ندار در با به عبادات داره و ما لایوز را به صحیحه چون خودش زمان آور نیست هده فاسد هم زمان آور نیست این نظر مبارک ایشان که اگر حدیه بود حدیه به اصطلاح زمان نمیان اصطلاحی شده که خب شریف اما برقای داره که رشده اصطحه صطحه هم یعنی حرام یعنی حلاک توضیحات این بحث چند بار دیگه تکرار نمیان ایشون میگه این نما یدولا علا غرمت لعظ لا علا زمان این که داره عنوان صطح این معناش این است زامنه در سال طلب با دلال شده بعد دلیل دیگه قاعده عدلیت معافلت حتی تو عدی داریم عموم این قاعده و قاعده تو عموم عدلیت و عموم عدلیت مختصم به غیر عدلیت متفرعه به تسریف مجانی اگر تسریف مجانی بود قاعده عدلیت اونجا جاوی نمیشه و لذا لا یعنی منو به حبت الفاسده فی غیر در مقام بعد مرحوم شیخ از بعضی از معاصلیش نهر بکنه که در غشب زمان نباشه من مقدر میگفتیش که طولانی شد این مطالب رو بعد متعرسش این راجب خلاصه بحثی رو که مرحوم شیخ در اینجا آوردن در بحثاتیشون قائل هستن اگر به صورت حدیه بود زمان نداره، اما اگر به صورت رشوه بود یا جعل بود یا اجرت بود بنامه که اجرت حرام باشه اونجا زمان داریم اون وقت در خلال بحثشون متعرض بعضی از شدن که ما انشالله اون نکار شده به عنوان بقول آها موادی تصوری و تصدیحی اول متعرض میشیم بعد خود مسئله چیشون فرمودن سابقه و لاحقه شو وارد میشیم یکی مسئله این که عموم علالیت مختصم به غیر رویت المتفرق عرض تصدیح المجانی. یکی هم که اونه ها این دو تا این دوتا مختلف جزر این دو تا یکم واقعه مالایوزمند سعیدایوزمند فاصله یا برعکسش که مرحوم شه در هر دو جا جه اورده. هرکس اون خدمت با سعادتش اما قاعده علل این یکی از قواعدی است که دیگه خیلی الان مشهور شده علل یت حتی تا, تا ما یک قاعده یت داریم قاعده یت اماره میشیته یعنی اگه کسی داشته باشه رفتارش این علاقمند سی این مالیش وست در قاعده یک همچنان به در اینجا نیست به مناسبتی در ذهل اصول اگر یاد آقایین باشه شیخ در ذهل استثخاب در تعارض و حصول با استثخاب یک یک رو اون قاعده یک که شیخ یک اماره نکیه وقتی میدارم بحث کردن صحبت کردن این و اماره, اماره بیدونن ما هم اون بحث تنزیگی اصف و و و و اینها. توزیر این بحث رو وقتی منحن فینا داره در جوی خودش این که قاضی هست یکی قاضی علیت قاضی علیت جزا قوارد زمانه در باب زمانت دهش شده چون ما انحاق زمان داریم زمان یکیونیست یکی زمان اطلاف منحظه در مانحظه ساله اوزامه یکی هم زمان علیت این هم به خاصه این که محطن روایت این محطن رو به عنوان یک قاعده قاضی هسته حلالیت ما اخده حتی توعدیه توعدیه هم آمده توعدیه بو هم آمده ترده در بعضی ها شده لیکن مشروع ترش که تو توضیحات ارزه این معروف از وقاده علیه بسی شاید منو در بعضی از خطب و آوردن همزان من پردن چرا خلال و حلالیت ما اخده مرغم اصطاد آقای بجنوردی در قواعد ففیه این قاعده ها مفسر شعر بن نظر جلد شارق عواضی تفیهشان هم محن کتاب و هم در خود عواضیشون محن بالای هستفه و علالیت واق هم دارد تا اونجوری که من تو زهنم تو نسخه عواضی واق نگم بر تو برد خدا که بوده یا تو عرصه نخواه ها جایی جده این که من دیدم هم کلمه واق نبوده علالیت مهاقصد حتی تو عدید. این معروفت از به زمان علالیت و خیلی هم مشروع شده به باید معروفی هم که شده خیلی تیباها لآل طرف خیلی شده و منشه این شده که فقاه ها کن که اگر کسی بر مالی پیدا کرد به مجردیت زامن نظر این معروف بگید مثلا در سیابان چیزی افتاد برداشوی چی هم مثلا؟ این مثلا تا از این کیف و فروبیش توش تردازم گفت او ما هاتشان هم ما سرد باشوی همیه که برداشت از فشتی این قاعده زمان نیامه زمانش موجود زمانیش این را چه به این روایت هم از سو از غلمای ما گفتن که این قاعده و قهلاییه زمان حلالیت با این مثال خیلی بسید اگه مراد که خیلی قاعده و نیست اگه مراد از این قاعده این باشه که به مجمعت دلوقت. جرعیان ایده انسان برای یک شیر اون زمان میاره این اقلالیت نیست بله اگر انسان بدون رضایت کسی یا حالت قصدی پولی رو بگیره از کسی درسته اون رفت به قادر نداره حلالیت اگر ما قاعد بششیم، اون مراد قاعده احیلیت اینه به اجرا اجراعیت شما برای یک مال دامه و قطعا چین چیز ارخی نیست اقلالی نیست و قطعا چین چیز ا شما یه مادر از نهی چیه؟ این آیه کتابی که الان که یه یه نازیش کتاب نهی جهان، دو دسته زوجش آمده ولی میگن نه شما زنی، برداشتی یه زنی. حالا یه معادل هست این اینکه در متن کفری ما هر دومت آمده نسلی معاصی نمونه سر واسطه در قبایس و و تو و از هر دو استفادی یه معنا کردن. اینا از ماشین شده البته مرحوم استاد عارفی مثلا سر راست میگه میگه که آقای خویی سراحت ایشا در مباحث یعنی ایشون اگه یک مبنای داشته مبنای دیگه قانون حساب و اوله اما من تا داروی مالی هم گیرش آورد مبنا ایشون این ثقل نداره ضعیف این فعیل که ما قبول نداریم پس سراغ این قاعده زمان علیت ثابت نیست مگر اون مقدارش اون باشه ما چیزی حد بودن به عنوان این شبهه ایدیت هست یه قاعده محروبیت و بعدا شیخ خرمودن مختصتون به دیو تصویح مجانی یه مقدار من این مطلب رو توضیح بدم روشن بشه چون من کنان اعط کردم که گاه یه گا بایدی مطالب شهرت نه که اعط مداری که شده بدیه نه ازالتقل مسلمان به سیفه ما فرقات رو مخصول کندا که رو شیخ رو محل رسائل برای شیخم یا خواهی اینهای که اوزای بام مشروع بده این منحسرن از طریق عبی بکره این برادر مادری زیاده نه عبیه مادر هر دوشون چون این صنعیه مادر اینها که کنی زیود برای حارس نکرده بعد حارس بیرون شدی زن ناسالهیه بعد زن عبو مریم سلوی شد بعد بعدم با یکی دیگه بعد چهار تا بکشی که هر بکشی بیه که منصوب هم از چهار این بچه‌ای که خیلی هم داره که از جان دل درن که شاد بچه هم. این مولا همین شورای اینم هم ابو بکر و این همون شخصی که شاده داد که مغیرتلمش اوه از بلا زنا کرده و شاورمی هم شادش کرد و آمر حد براش کرد این ابو بکر همونه که از قبل برای این, این, بر. این خیالات خبیثی بود و عجیبی نوشته ان که بعد از اینکه حج خود 80 تا انجام شد باز وقت هم شواله دیدن که مویره زن بود اون گفت دست اونم به حبیب ریون اشعری جلوش گرفتن امیرالمومنین جلو اومد رو گرفتن اون چرا که کاری تو طازیان میده من مویره صاحبته مویره رو طازیان کرد え لكن خود اینا اون به چیز متخلفین از بیعته یعنی از کسانی که با امیرالمومنین بیعت نکرد ابتدای دیگر که اون هم اینه این قسط رو هم فقط عبو بطر نقل کرده غیر از عبو کسی که نقل نکرده حالا این کسی کتاب سعید کتاب رسال شیخ خامل غیر از عبو کسی هم نقل نکرده خود اهل سنت هم اعتراض دارن که قابل قبول میزین حدیثی روز این طوره به چون حاضرت هم نقل کرده یه شخص میگه من وقتی ان میموانان در جنگ جمل من رفتم بیرون که کمک امیرالمومنین او وقتی بر رسول آتیکو خودش رو دیگه هم مخابره نه نه امرش هم چون بخوایم برای خودش ایشون اونجا مورد یعنی <تصفح> او یا نه علی یا جنگ درد میخوره میسامی رسول الله المسلمان به تیکه ما حالا با دختر دختر فرناح. و از نظر این حدیث این, این حدیث و این خود احل سنت سابقاً متعرسان خودشون هم هیر کردن که این حدیث قابل قبول مید خود احل سنت شراح بخاری هیر کردن خیلی او ابو بکرم که این عقل به این شخص خلیصه که اجمالاً شراز شد لیکن خب اوند تو حوضای ما جا بود داره این حدیث نه اصل درستی داره نه پیش خود اونها نه محکوم درستی داره و تحصیلش قطعاً باطله هدف از این بوده که با امیرالمومنین سلام الله علیه تشریح بشه خب برای ذکر دو فرماشه در شوخی دو تا از موضوعاتی که مسلمان ها یه دیگه هم برای حدیث علیت که عرض کردن ادعای شهرت شده ادعای تلقیه و قبول شده مرحوم استاد آی در شرح واقعه فرمودن که چون اشتهر بینال عام و خاصه موثوق صدوره بعد بل مخصوص و تجارث کرده. همانند که این این حدیث صادر شده از پیغمبر اکرام قد ادعای هر نه ادعای ذات شخصی ما هم که کلان از کسی این قد که چون حجت نیست الی جوا وجه ذاتی نداره اما به هر حال ادعای تا اینجا که بحث مثلا از متن اصول این شیئه مقداری مطلب روشن بشه و راههایی که گفته شده برای اینکه این حدیث قابل قبول باشه حالا یه روایت از که این نداره و بل به بل این حدیث در روایات ما سند نداره و انجباره هم که ایشون قبول نمی‌فرهن. خب یک مرجع مثلا روشن چه بحث مداره. اما اون راه‌های دیگری که گفته شده چون هم مذهبه را انجبا متعرض. هم جز روایاتی که آثار فراوانی در این قاعده داره، یه توضیحی من اجمالاً راجع به این حدیث عرض بکنم. این حدیث اونجایی که ما خبرداریم و خود اهل سنت هم راویش منحصر به سمر... سمرتبن جنگره این شخص معروفی است از خود جزرس پیغمبره و از جزبه از اون عمرای خونخار و قاتل تاریخه میگن در بخشه هشتزار نفر فقط به عنوان وزاره ترمیر مومین در مدت امارش به اسطلاح سرگوید البته در خود کتب اهل سنت و تاریخ معروف به کشتن خبارشه بیشن یعنی معروف بود که اگر یه خارجی رو می‌گرفتن اینه که یا مسلمانه اصلا توبه نمی‌جاست مثلا بگو بیا رو برگشتم هیچ‌چی همون صاف می‌کرد از اول هر حرف اولش تو در, در اصل عربی است اخر دوا از چیه یعنی سوزوندن که مثلا ایراد می‌شونه اون اخر دوای این اول دوای شد یعنی از هم اول شروع می‌کرد یه مسائل وسط که پیدا نشه و مدتی این چرس امیر بصره بود امیر کوفه بود در باره تاریخ وفار با این شهاری جداره متاسفان اختلاف هست مشغولتر اینه که زمان معاویت سختی خوده نه زمان یدیک و حتی در جریان کربلا ایشون دست داشته در کوفه مرزون رو تشریح میکرده که علی سلوشهده با جبهه برن به اصطلاح به جنگ سلوشهده در حال شخصی که در تاریخ اصولا جز منحرفین هم امیرومومنینه اگر آن لحظه داشتن؟ این کتاب شرحن از جبل آقای ابن الهدید جده چهارش یک لیستی قادمی و از اشخاصی که از صحابه بودن یا از رواتن یا از علما هستن یا از مفسرین که اینها ها منحرفین علیه و هم مغربی همین اول مومد مثلا یک لیستی داره چهرحالی از اده از این منحرفین همیثال فصل ابو هرهو و همیثال همین سمرو و همیثال محیرت بن شعبه و این هاره اسم داره یکی هم خود همیشه سمره، سمرت نجوده. او نامی میکنه از ابو جعفر اسکافی که از وزرگانه. این ابو جعفر اسکافی از مقتزلاست، از ابو جعفر نریب. ابو جعفر نریب او سال ۱۲۰۰ دیده زعیديه، سال ۷۰۰ خودی باقداد دیده. این ابو جعفر اسکافی نه. یکی سه شش سال چه؟ مقتزلاست. یکی هم باقدادیه. از ابو جعفر اسکافی نام میکنه. سالش هم تو زهن نیست. که معاویه به سمارت طول داد که این آیه معروف من تامال مؤمنین اموالهام این شنو از جمع نظرف شده مثلا یه آیه هست که اداب ترالاس آتال ارضیاب سریفیال هر که هست و, هست و هر سر نزد که بیه این درشنا علیم ندی کرد. اول سر هزار بیشتر اون نکه ده تا تا تا چهار هزار چهار هزار تا اگرف تو اون ستا. کتی این حدیث جام که مال رسول الله که این آیه در این آیه دارم. حالا آیا هدی ابن عبد حدیث مدار نظر احوان کشتران کردم کسی که کسانی که متعرضه شده این سمارت نگوندر قطعا که از شهرهای منحرف و برزد در میرون مومنین و برزد شیعه این حدیث هم در کل مساضر اهل سنت هیچ کس از صحابه به جو سماره نمیده رامیش منحظر در سماره هیچ احرگ از صحابه این مرز را نقل نکرده جز سماره سماره سبن جنده البته ظاهره در اون وقتی که در بحثه بوده و از سماره هم هیچ از نکرد جز حسن بحثه بعد از حسن بحثی دو سنه بیشتر اما از حسن بحثی یعنی از سماره هیچ شخص دیگه دی جز حسن بحثی نه از حسن اصلش از احواز از سرستان ایران بعدها ساروارد بحثه میشه حدود سال های سی۹ در ساله بوده 19 ساله بوده وارد بحتر میشه.یه چیزهایی هم در کومشا دیده باشید چ در کتب حلل س که حسن بخشی شا در زمین و معامی گرفت که در کتب ما که از ص بحث وی برای کممت ساماری و آز آمه به او بد گفتن هیچ کدومش ثابت نیست می من توضیح دادم که داردره ثابت نیست حسن وی از ص دیده باشه. یک تون حسن ورسی شخصیت اینیست بدونه چه هم خیلی حیکر خیلی هم داشته بدن بسیار زخیم غیرمتعارفی دارست یکی گفت با مخواد بارم مسرح حسن ورسی کنیم گفت تو برسه قیابه چه منحصه داره؟ نه یکی که قیابه از اون درشتر و زخیمتر گیزی همون که میخوادو میشه داره یکی به معرفی از خارج داره مثلا این مچ دست ایسان که دو یک وجه بوده یعنی بیستن نسان خیلی عجبه یک وجه مچ دست نسان این باید مثل چیزی مثلا این قولی باید باشه اگر راست باشی توصیح که بیشت دیارشتر بر از این بله یکی از خنون این چند تفنون در کلام هست مثلا ایشون داره خطبن و علی یون دل بصره خودش نشید به آزن این که باید تحمیه بکنه که انویار در جنگ جنگ در جنگ در جنگ که خب بوده صحبت صوفا اما بود، اما هستن بحثشون اگه بحث نبود تو جنگ جنگ تو بحث به اگه که داری سعی کنیم که خطا نداشته کنیم، خطا بنویزیم. زمینه نامی اره که اگر خودش نشیده باشه، از اهل بحثش میگو. این انسان تصور میکنه چی از اگر دلپذیر میگه از دلیل انسان نشینه. ملاقات میشوند که اون بخلاف همون بعد از خوده فلسفه یا ذوق عرفان که یه مقدار طعون حری رومانی به اون درحسن بسینه نه اون درسته نه این یکی. اصلا ملاقاتی نداره بله با ثمره ثمرات نجوند ملاقات داره چون انیه بسته بوده منع یعنی اقشار 39 که حسن درف بس بسته میاته خود سال سر ده وقت باشه حدود 58-59 گفته شده 57-58 و خاصه گفته شده 60 گفته شده و هر حال مسلم امیر بوده در زمانی که بوده این رمال کلام بین اهل سنت خوب در بفهمید. این است که میگن حسن بحثی ازشون نش لم یست و لذا این که از در بحثای حدیثی به مناسبت از کلم به این احل سنت مید شرط بخاری شرط کلام اینه جزمه احادیسی که آن باید سوال من این شرط بخاری چیه خود این حدیث محض کلام به این, این احل سنت این حدیث حضرگید ما اخده در این سه ها هسته احل سنت مصرم و بخاری نه بودن چهارتایی ها بودن این نسایی و دارمی و ابو داوود و ترمیزی و اینها این چهارتا این, این از نه اما خود به اصطلاح بخاری نیست. بس ترمیزی من سابقاً توضیح دارم تو این کتبه یه داره یک تفصیحاتی و توضیحاتی برای حدیث میده که اشاره به طورا بچند میکنه به اصطلاح خود احسانت ترمیزی قوایی داره که یعنی از کتب دید. در زید حدیث میگه حالا حدیث حسنون صحیح یا زید حدیث صح اما بخاری اون نمی دونه صدیق نمی دونه ولی مسلم مسلم کی شدند سوال که کی زنی به در کلیس اولیش می کنند بعضیان بعضی علاوه بر چون آنچه می شوند گفتن نیمه بعضیان مسلمونا هاکی هاکی این شعبی در مسجد را که این حدیث اولیه بوده صدیقان علاشتر بخاری ادی از اول ها یه حرف صنعت بخونن لیس صدیقان علاشتر بخاری صدیقان علاشتر ترمیزی این شرط بخاری و شرط ترمذی رو صراحت توضیح داد. از علما اهل در, در بحث حدیث یعنی ات... تفصیل حدیث سه هر وقت اتصال سند باشه. اینکه اتصال سند روی پیدا میشه؟ مبنای مشهورش اینه به منجر به مواصل پیدا میشه یعنی اگر این شخص با اون شخص همزمان بود کافی فقط بنده مثلا از راه خودمون آقا اینو فهمیدم. میگه این کافیه. چون مواصل بوده و به منجر دستشون رفتن این کافیه. در مقابل مثل بخاری میگه معاصره کافی نیست باید سماع هم داشته باشه اضافه بر معاصره اگر معاصرش شی باشه به باسته نعم باشه که اصلا تدریس میگن این سعی نیست این اصطلاح را که اگر الان براتون خوندم جنابون حاکم مرشست صحیحان علا شرط بخاری بعد باید بایدش اشکال کردن صحیحان علا شرط ترمزی لد بخاری همین اشکال درست این بر شرط ترمذی حالا سلی سلیم نیست مثل اما به هر حال اگر بخواید محاکمه بکنیم حق با همین آغاز است. سندیان علی شرط ترمذی نشری بخواهد. چون شرط بخاری در بخاری به معاصره اعتقاد نمیکنه. اضافه بر معاصره لابد من ثبوت سماع است. بخاری حدیث عیده رو نعدو میکنه. یک حدیث از حسن داره از سمرقندی. میگه غیر از این ثابت نیستم یعن سماع. خود حسن بصری و که معاصر بود ایشون 20 سال در کوفه بصره بوده که در خلال این مدت چون سرماری غالی از زیاده زیاد ابن عبی حاکم می‌شده در بصره و یا در کوفه شش ماه وسط شش ماه کوفه, ما کوفه اینطوری بوده بعد هم از طرف تو خود بصره رفتن پس چند سال این حاکم بصره بوده و امیر بصره بوده و حسن هم ظاهرا تو بصره بوده اما لمیعنه اشراقتون سر سماه معاصرت داره اما سماغ نداره ولذا اشکال معروف در این حدیث بیش احل سنت چون این گفته که به که حدیث مصنده یا گفتن صحیحه من این توضیح رو بدن همه اهل سنت این حدیث رو صحیح نمیدانن این اشتباه نشد از کسانی که تصدیح کردن به تصدیح شید تلمزیه حسن و صحیح من یه توضیح ها کنم سابقاً فرقه به این حدیث حسن و صحیح که در کلمات عهد سنت هم از بعض حسن اصطلاحاتی صدایاتی وادکرده. یه شرط سلطانی میخواد که اینجا نیست من جوندی در کتاب تهرمزی. جوندی یه علامت تو ذهن نیست. قوم یه حسن سعی کرده ولی یه سعی هنره حسن جلو جوند کنه. یه بحثی دارم در کتابش اینا تمام یه اصلاحاتی که هیچ گونه علمی نداره بیشتر به جنبه اصلاحات و اصلاح مالش میاد. ما کشوری دو ذره میخوایم. بحث علمی نیست. ما جدلات اصلاحی که نزدیک واده اینه نیستن. پس بنا برای این حدیث علالیت ما اخذت حتی توعدی خوشن شد در مصد سنن هربع اهل سنت آمده از شیشتا کتابشون در چارتاش آمده و یکیش کتاب ترمدی تصریح کرده حسنان سریع از ستان دیگه از خودمها و عمه شعنشون که تصریح کرده تصریح کردن به سهرت حدیث حاکم نشابوری ایشون هم تو مسترکتی رو آورده با همین سنت رو آورد گفته صحیحان علا شرط بخاری و که نه از شهر سنت یه مقدار متصاحب در حدید در یه مقدار این مقدار دو لفته مشکلاتی داره چون یه مقدار هم به تشریعه ایشون مستهم به تشریعه در جا در رقایی در فضل خب زنه نهارم مثلا مثلا جوریه در دستانگی هم مثلا زهره خیلی اونجا بودشون شدن از بحث به زحمی سعی نشود خود داشتن مگر به نظر نخواهیم نگه که فکر میشود بر, بر کلام حاشیه بر کلام داره نداریم با مبین معتقد میباشیم معتقد نیم اما بعضی حال اینجا هدیه شدن نشون نمیشه که ایشون چه بوده گیت سریان لغتی بخوری لغتی بخوری هدیه سریانی و این میشن کسانی که کلامه نیست هم در محلات بحث آریه. این حدیث رو و نمیسه لهم علی حسن سماره اشکال معروف تو حدیث اینه پیش اونا مثل ما فکر ندون که سماره فرد منحرف و فاسد و منحرف از امیر و با اون درجه از انحراف و واقعا چیز عجیبیه کتابی کتاب بیاره این عبو نائیل اسفحانی هدیت الاغیاد بسته مالو قرحفا و او جاالله و این ها سخار خود یک کتاب همین صحابه هم در این معرف صاحب که در جلد دو این چاپی که من در این چاپ فنجیدی، ایشون رو آورده گمیه و کان مملکت و تهیه حدیثی انصار صلی الله عزیز سمری و کان و حب الله علیه الصلاه و خیلی واقع تأثیرواری شدیه دار عالم و صلی و صلوک نه داره یک افراد منحرکی مسلوق اینه بی خود عهد سنت را جلوی سمری یک مشکلی داره اند خود عهد سنت چون نیان پیگان به این سه نفر از که یکیش خوزیفه بود یکیش هم ابو حریفه یکیش, ابو حریفه، یکیش فرمود آخر و کن موتن تنان جزان هم زمان امام حسین پیشیدن چون گفته شده که آخر موتن ابو حریفه هست و که مشروطترشون آخر موتن همین سماره هست خوزیفه که بعدن اول بود اون که ایچه که اعلم و بحثی که بعد از کیه؟ وقتی در بالای استعمالشان این نوع مرده شدید پیدا میکنند سرمخت سر دردش سر شد درد شدید پیدا میکنند پس نوبالیواد نشان میکنه گرم میشینه یک سری که بزرگی رو تو آب گرم کرده بودن و روش دردی که رو اون گرما اون نیست یه روز تکان تپانگو خوره میاد توی آب جوش ادامه آب در حال جوشیدن بود حالت خاطر کسایو بناست جیوالله به این اینطوری فرض میکنه. اینا آمدن برای خوجی حدیث رسول آخیرا خوب ملتان فنار یعنی که فنار جهنمه اینا ملتان فنار یعنی تو همین دیگه آموزی چوکت میذارن، حاله. حالا که به مکان واردیم بس یعنی خود حدیثونه سنت هم میتونن که پیغمبر در هنچی مکی بیشترن. آخیرا خوب ملتان فناره. به کسی میگم. ما از منکان میدیم میمکن کن لیو حدیث رسول الله استاد به این حدیث در مصادر اهل سنت خیلی سننه. در دیگه، مثل که دیگران آمده، از سنن در در مصادر دیگه و مصادر کاهتم دیگه هم از اذه از مدماشون تعبیر به صحت آمد شده. که الان در شما اهل نسای یعنی خیلی خب بین اونها خیلی معروفه. او هم اورده این حدیثو. این بلاحال در حال حدیث شیعه اهل سنت. و نا اینکه خیال نشه که این مثلا متفقان علیه بین سنی است. خود سنی‌ها گیر دارن. و انما در روایات ما در روایات ما اصلا اشاره به این حدیث نیست نیست نه به آنها نه نه اشاراتی مثلا فقط کامدیت و علیه آن اشاره بیاد مثلا نه به نحره اشاره نه به نحره قاضی کلی کلن این در, در مساده ما کلن نیامد نه سریحن نه سریحن به هیچ نحری از انها نیامده حالا مرموم اصلا دعوی وصوب و خط و سبور با رو با نمی همولین که سانی که از علمای ما این حدیثی آوردن مرحوم شیخ توسیه از سر مرحوم شیخ توسی دو کتابشو متاسر به در اهل سنت نرشته که خلاف که موارنه عربو عربه فضل مقارنه یا فضل تصویری به قلبه یا فکر خلاف به تعبیر بردرش یکی کتاب خلافه بعضی جه های نیست که مفصود هم داره الا قمدهش در کتاب خلاف خب بیرم اما مثال معروف که شاید مرموم شیخ توسی به امان افتجازن علیه این آورده چون مرموم شیخ توسی بازون تو نهایی کتاب شیدیسی نه یه نیمانی غیر از که در کتاب حدیث نیست در مثل نهایی هم نیمانی <تصفح> طبعا من آ... خلاف خلافش که مسلمه احتمال محسوس هم داشته باش خلافش که مسلمه حالا زیاده ما این نقطه دو بعد از شیخ توسی من از خلاف کرد حتی بعض زوزه نام کن برای از اول ما هم آیا خویی می‌کنند که آیا خویی می‌کنند که مفصل شیعه رو، یعنی مذهب شیعه نبود، مذهب شیعه تو سیبدنیم، بعضی از این سفر هم می‌کنه. من هیچطور مجموع تا این لحظه ای که من دنیاستم، بیشترین تأثیر ما در مجموع معارف دینی به شکل توسیه نه به شکل موفد نه به شکل صدوق نه به سلامت بیشترین تأثیر ما در مسائل ریاض، حدیث، فیض. چرا نجفه شد بیشتر باشد در خود حدیث اطلاع ما بر حدیث و مسئله فتحابا دایش ما خیلی تأثار شدیدی به افکار شیخ و یک مجموعه جهاتی بود که جه شمعش اینجا از زمان شیخ توسی یعنی این تو کلمات اصحاب می آن اما بسی کلمات علامه که ایشون هم اونسه به احادیث آمداره را به مساده را داره باز بیشتر میشه این طرح میشه و از قرن و هشتم یواشواش وارد میشه و اما در خود مطون روایتی یک، دو تا مدتها در مطون فتاوای اصحاب ما حتی مثل شیخ در نهایی یا شیخ مفید یا شیخ صدوق اثری از این روایت میگیست پس منشه اشتهار روایت اولا خود روایت برمیگذر به سمارت ابن جندب ظاهرا تو ایام امارتش را میبودنش در بسره کسی هم غیراز حسن بسری نقل نکرده. بزرگان حلیث احل سنت همه س بخاری مسلم ابن حس که اهل فندن حلیث را ضعیف میدونن قبول نمیتونن فتوار حسن برشنگه خواستن که را زیش این طوره. اینه که ما میگیم قط حجت نیست برای همینه که بنابار بجنابیه دایه قرد در دا اینجور میپروان که در هر نقدش گوسوب باشم ما از که این و رو حتی رود خ تاود فر درصد شما اوغلایی باشه مقدماتش اوغلی باشه. 10 درصد ش خی در خصوصیت زمینی دخت میکن. وال ن درصد مقدماتدرریسی تست میکن اوورد. خب اشتاری که در مسئله آمده همینه که به این اصاب نشهوع در شوارت پیدا کرده این مصرف به م گ از خ آمده این آیه. ما, ما هست. به اصطلاح در اینجا از عبارت در عواله مرحوم ننابی داره اشتها را به این قلع اصحاب و طلاول آفی کتبه و طلقی و ها بالقبول استدلال هم با موارد عدیده یوژگر و ذرقه ها اجبار ذرقه یک مطلبیه طبق این تصوانه ها روشنش تو که اصلای آمده که اجبار ذرقه شد اول یکی جسا مطلب هست حالا صادقانه متحرسیم یکیش که کردم متعRESS شدیم که اشاره کردم میشه یکیشم فاضلیم فاضلی مواصله میشه چی شکل داری گروز بودن ما بیشتر مینیم احتمالی که این گروز جدی از باشه مال خودش نداره در مثال آن مکانی که کردم نگفتم از آن گروزین هرکدی اشکالیشون نداره به علاوه سنی مختلفی از ادی اشکالی از صبر کن مثال دیگه از در خلاصش اینه که اگر حدیثی بین اهل سنت مشهور باشه و اعمعی هم رد نکرد باشن قبول ابو یوشه اجماع ده مثلا ببین معلومه که روایت حاشیه از روایت اهل سنت و که اگر تغییری در هاشی بر اورده قبول داره اگر اعمع روایت رو مسند داره نکنن، نعبو نکنن، رد نکران نه قبولش یه از آن انگلیسی تا و حدود با هر چه مطلبی باشه حالا فرض داریم می‌ذاریم که چین چه قضایی کنه؟ در موردش ای هر باز باشه که عادت حدیث مشکوره. حدیثی رو که امیر رو کرده امیر باسر اونم مثل تموره چون با این خود امیر که مثلا این اون مقام رفیع سیاسی مطلب نعر خودش این خودش زمینه نیمه میشه شده شاید برای قبول میشه این اگه ممکنه كلام صحیح باشه ولی چون آها قرمیده یکم مطلب میشه خولیه امارات یک چنین ایشکار قابل اعتماد مطلق نه اصلا مشکلیه من فقط حسن بختیار هیچو شعرت درست میکنه این حسن بختیار اجازه باعث ناروا کنه به خاطر شما شوهر این چیزی شو میفرماید این روایت به این ترتیب این سوره کلام در این حدیث درست است یه مطلب دیگری در این کتاب فاضل معاصر محمدی چون احتمال میدارم این محلاغوای بورژویی نرو کرده باشند اینشون آقای برو جریدی میخوانم بگه که از عبارت شیخ در عده در میاد که اصحاب اینجور ربایات عمل میکردن در عده یه عبارتی داره حالا اینجایشون کاملش رو آورده من به خاطر بعد از نکات فنی میخونم همیشه رو توضیح همیدار که اینشی توضیح میخونم یکی در درست توضیح این عبارت من اینو توضیح به مقدار مناسب اینجا عرض میخونم توضیح تفسیح در جریدیه در عدد قرمان شیخ توسی اینجور فرمان و عمل و مراعات مراعات اسم مفهول از با مفاعله است اونجا فی ترجیح عهد خبره این حال آخر البته ایشون این بحث که تو بحث تعاوض رو برده که یه خبر در دیگه ترجیح داره شد چون ایشون اشتباه نشه دو بار متعرض حسخان و مزار فاصلش در عدد فاصلش هم خیلی کمه. مثلا در شاپ قدی ممکنه سشار سطح باشه یه تو بحث خبر کسانی که از حال مزار قصدهن، خبرشون نبوده‌اند. یه دفعه تو بحث حذیف و فارز اول این عبارت تو بحث هو جیر نیست، تو بحث حذیف. فهمن یکون الرّوابی ما اتکد می‌کنم لحات مستقران سقتان فی دینه متحرر جنب الکذ بیره متهم متهمی که ما یاریم. فهم ما از آن مخالفم تلی اعتقاد لعکسی مزحم. در روا معذورک انلعلیهم السلام. نو زرکی ما یربی خیلی امکان هنات این طرق به بهیم مایو خالفوهو یعنی اگر از زبادات شیعه رد زده داریم رجب اتراح و خبره اتراح و برسال خبر شبه و اینم یکون هنات مایو جب اتراحه خبره و یکون هنات ما آفقوهو و جلل به مثلا سومی نهل کرده چیه هم مطابقون عرب کن خب وجب برم و این لم یکن تو در قلب این ذهب شو هم در این مسئله نقل فرقت محدد خبرون یوات و ازالک اصلا خبر ندارن چیه کلا ولا یعرفو لهم قولون فی این محل رو این که ایسون اول فهم خبر ندارن باست هم ولا یعرفو قولون لهم فی این مراد جهدیشون از اعباردشیه در یه وقتی توضیح دادم اجمالا الان جاش اینجا نیست احتمالا اشاره شکل به دو مکتب محروف اون زمان باشه لیست خبرانی و حافظه و مکتب قوم ولا هم موران فیل مکتب قداد احتمالا نظر ایشان به این دو مکتب باشه یعنی نه مسئله مسئله که فرسان داخل بین علمانی قداد اجماع بر شنس و نه در مسئله ن و چه بشه؟ وجب ایمان را وجب خبر از شیعه و کلی هم اشیا داخلش نیست. تو وجب اعمال سلام اناهبا. اگر نه بلد بکم خاطر سکون لات جذبون وحمة فی ماروی امنا، ماروها انعلیه سح ملوبه به خاطر این روایت در سنوز لحظه ما همه در طریفت به ماروها هستون نمی این از بزرگان علمه احد سنت قاضی هم بوده کتابی روایتی مجموعه روایتی برزمان ساده این هستون نمی هستون نمی هستون هستون نمی هستون این از سنی و نوحبن و این از چیه هست؟ کان یخفی هم رو یا این و و مالم رو منکرم ولم بیا خلاف این عبارتیست که از این عبارت در کتابه جادی زیاد دکت شده و منشر شده که بگن مرموم شه در حدود سکونی رو توتیخ کرده این منشهش این عبارت ده کل دکت در حدود در سکونی اینه من خاطر نقطه ارزو میگن مرموم شش خرمزه این که چون سکونی بایی که از آن مستقه بوده به رازش عمل شده از خاقش عمل کرده مرموم های توستری مرموم هایشان ایشان تقریبا من به کم که من ایشان این تقریبا توهین تو نمی‌دونم چه من کامر مشون استقرار به کابل این تکنیکی کافی هم ایشان نمیده اگر موافق سری من اعتراض کردم من چه چی شده تو بحث و حجج خبر شهه اگه تقاضا واشن و مخالفته حد واشن قبول دقیق میکنه و ازا به رایت مثلا بنی پذار رو به رایت کنه یک دست ها و فتنی میاد. در اونجا تعدیرش اینه چون ثباتاً عمل میکنه دقیق سه چهان ثمیه اون قدیمیش با این فاصله داده اینجا اصحاب مدار فاصله رو بوده ظاهراً برای آنی علمی شده خیالی کلوی اینا هم ثبت در من اگر بیا سه ما عمل میکنیم خب دفتیه آشانسانی توسطنی یه منطقه دلید. یه خلی پیشه سکونی اونجا هستان اشتباه نشیده اسم سکونی اینجا هستن اونجا اسم اینجا اینجا, اینجا؟ که سه باتن چون اگر ما روایتی که موافق و مخالفش در ما نیست. اصحاب هم برزدش مطلبی ندارن امام صادق فرمان عمل بکنی نه که اینا سقاب این به نظر احتمال این این فادر ماسر ما هم هزار نه. بعد ایشون میدی که وظاهرانی اقواردینشان هم نعمل اصحاب و اخوارها ها اقواردین محلوی ندارن کنیم کنیم جردی این کار نهر اقلاف مردم آی سستانی تنبه. درست کنشان جوی من میگم، امانتر استفانه. بعد یا بعد از جیسی کنی من آمادن سری درستانی کردن. این منشه شی شده. بینید این دو عبادشه فاصله کمه. هر دو در مورد لحظه خلاقه. در مورد خلاقه. گروه بانتر. فرق بانتر. بکر اما تو اون یکیش گفته گفتی چون عمل کردی. تو این یکی اینجور در بحث تعارض ورده، رو میدان روشن شد. و ادعای شش این است که روایت در مثلا شش اینجوری به خاطر وثاقت اینوها ترجیح چون میگم بحث من با این شو نیه چون احتمال نمیشه کلام الله گویری باشه، لذا طبیعیه چون از شایده تغییرشون نوشته. لذا به این جردن اینطور ترجیح دادن بحث شد. احتمالا باز با عبارت اونجای ادعاء اشتباه کردن. می جایی که چه اسم سکونی و بده نه اونجا اونجا اصلا اونجا سکونی برده نشده ن این ش آن در خیلی از خصص داره جای معروم شده که شل در قه بر در اگر در, شده. در. یک که جالی شده باید. از آمد و این سق درالش عملشه خوبتر در بود. یک اشتباهی که جای شده بعد کم تون من کل مان مع آشان تی تستلی از کل توکی هم نکرده. حالا بر کلنام شع رو بخیر اجمالا اجمالان نه بکنی اجمالان هر کی توضیح میخواد میخواد یکی در با و تقریبا چی میگه اصحاب دروازه سکونی جایی عمل کردن که قائتا ما الان اصل عملی جاری میکنیم درسته امکان داره که اصلا وجود ها دلیل نیست نه موافق نه مخالف اصحاب اصلا ربط ندارن ما الان شکار کار میکنم اصل عملی جایی کنم دیگر وقتی اصلا در مسائل دلیل نباشه برمیدیم به اصل عملی اصحاب به جای عمل اصل عملی برگشتن به چی دراتی سکنه یعنی حرباب دیگه بیتارگی و محذور گیر کردن برای اینکه از اصحاب ما از اول محروف بودن که اهل اشتحاد نیستن اهل اصول عملیه نیستن اهل نفسن حالا اگر در جایی نفسن باشن باید برگردن به اصول عملی لکن اصحاب به اصول عملی عمل نکردن آمدن دراتو سکونه عمل کردن تاقت برای خورجه تحیل ها بخور رو از این مشکل هم اون بعدا من تاریلشه اضافه کردم این مطلب بعد شهر آمد تانس ابن عزیز ابن عزیزان باید خبر باید به شما حوجه نیست اینجا برست مراجعه کرد چون تا زمان شهر رجوع برست برای علمان ما سخت بود دراتو این عزیز خیلی رویو کرد از برگان روی کرد نه نه خیلی مشهلی دیگه مثل سالی و سالی اولها روایات سکونی تر کدر از موصول عملی مشکلی تیسه آمد بکشی نظرین پس در حقیقت از نظر علمی روایات سکونی به منزله اصل عملی بود این رو قبول کردن روایات در از سکونی داشته و غیر از و از کرده من نوعی تاریشه از کردن سکونی که خوب گفت که نشد راهی که دلیل به این معنی بهره اضافه کردن به او رو که از امام نقد میکنه، قیرتو کسی از امام نقد ای میکنه اصلا رازی سکونی شیاذشینه. نه ادبیاتش رو غیر روزی دیگه نادرید. هر کسی که قیرتونا. علی بن محمد مصطفی. داداستکمیا مشهور از اصحاب بزرگانی که اون زمان بودند مثل ابن ابی ازش نقد نمیکنه. راوی معروفش موفریش که خود اینا واسه روشن نکرده. بله عبدالله نموغیر از خواهیش ما ازشو نقل میکن تا حدی لیکن ما توضیحات مفصله از این که عبدالله نموغیر اصولا یک فقیه شازی نقلیشان شبیه مشکل حل نمکن بعد از جناب نوپلی هم از نوپلی هم ابرال نحاشم نقل زیاد نقل نکردن شبیه یه نقل دیگه سکرونی خودش منفرده راوی از اونم منفرده بعد از اونم منفرده بعد از ا کتاب سکونی در قراره رو شکلی نهاره تاریخش این طوریه یعنی از قبول سالهای دیویز از سالهای دیویز دیویز تو بیست این حدیث, حدیث سکونی نهاره میشه خب این سوال پیش میاد چرا این خاصله زمانی قوی نقد شده نمی چرا از این سال دیویز دیویز تو بیست نهاره نمی چه نقطهی داشته از ابراهیم نهاشه پسرش علیه من زیاد نمار میکنه کولینی ازشون نمار میکنه صفوار نمار میکنه از ابراهیم نهاشه محمد و نحمد نرزان سرده خیلی زیاد نمیخون با رو بحث زیاد از ابراهیم نهاشون نمار میکنه این سال دیمیستوری در ذهنتون باشه ما سر عمل برای سکومیر نمیدونیم چون از هین سوزوری 140 سال, سال پنجار تا این سال همش انفراده. این یعنی خصوصا رو شک نه افتید اون نه اعتراض چون عدل اون موقعی حساب چرا از 220 سال ما خبر نداریم حدود سال‌های 420 یعنی 20 سال بعد از این حادثه تفصیلش رو کرد شیخ توسی این کلام رو میگه این تحلیلی که ما از کلام شیخ طوسی مثلا مفصل شرح ماله اجمالاً در احتمال بدیم شیخ طوسی هست برای داره برای شط که چرا از سال 2020 از به در آدی سکونی آماده کرد؟ از این جالبه های مضحک میگردم توی آواز خودی مبارک چون سکونی زگرد نه شیخ نه کسی چون سکونی زگرد. این سوال که چرا از سال 2020 از ها در آدی سکونی یاد، به درک میشه مراون کلی کنه مراون سالون نگو کنه شیر. البته نکته به این ها تمامیشون رو کسی منبرشید. خود دقت یعنی گوی کله نرم میکنه، صبوق نرم میکنه، صبوق نرم میکنه، کله نرم نمی‌کنه شیخ نرم نمی‌کنه و او اون نرم می‌کنه همین سر اون من قصه ملایچه این دیوگه است که همیشه نواخت باشه این سوال میاد اگر این سوال میاد، منظور شیخ به نظر ما نظر خود ما اینه این شیخ داره تحلیل میده که اصحاب چرا به روایت تکونی عمل کرده از سال 220 نیست yes, مورد امر اصحاب مثل اصل عملی بوده بل از همش قایرا سو شانطری سوسیه دیگه برای همین آدمین از طاغ بر اصول الف حجی راست ایشون ها توضیح نرسه مورد عمل اصحاب ما بر اساس چون این تعریف جدی نیست میشه از تغییرش کارو کنیم نکته اساسی عمل اصحاب ما با کتاب بارو باشه معامله اصلی عملی کردن چون می‌خواست بگن دیگه به اصول بر نگردیم بالا بره ولی مالش خوبی هست قبولونه ز این هم نکته و این بوده شیخ تو سیدوستن رواجی هست از امیرالمومنین، از امام الصادق. که اگر در حادثه سه چیزی نبود، تنظیم امامان و هو اعلیین، شوند کتاب شکنیم این گر بوده، آن جاه فر، آن عبیه، آن آبادی، آن علیه قابل قا رسول الله، در جواره، که ما لیوم در جوار رسول الله. پس ریشه تو سید نکته رو این درمات تعبد داریم. امام صادق فرمود: شما ما بین به این ما یوربانه علیه نعمل بکنیم این نرفتی به سالت سکونی داره نرفتی به حجیت روازش داره این تعبود سرده اصحاب هم تدریجن فیلمه برد عمل نکردن مجبور شدن به این اصول اعمالی مشکل همیش این سر این که از خرمای هشون برد روازه و آشاش تهرده چون شیخ را داشت خود هم همین agora خود جیگر خودش بود جدی نمی نمانید. رسالتش نمی نماند اینو قاوی گفته. و جوان ما شیخ هم یک کلمه است این حدیثی که شما از امام صادق نروید ما هیچ جا پیدا نداریم. ما هیچ جویی ما این حدیث رو نداریم. اجازه حداکثر چون ما دین داریم فقط ادعای شیشه تو شما چین هیچ جوی نه حدیث رو ندارید. دلیل دیگه هم داره که ایشون وقت خیلی عذمام گذرد به سیره اذا فعلنا سوف اعرض بكنا و سلال الله عليه على و